اللّه من الشّيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب على کلمات این این هم طرزه شهر می و هم به دراز سیر تاریخی مسئله و کاملا واضح بشه تردیجا در طرح کلمات متعذی دیروز کلمات یعنی روز کلمات شیخ توسی بخوندیم از مسادره ره و شیخ توسی هم در حکم به فکل صاحب اشکال داشتن و هم در حکم به حساس اگر کسی رو سهرم بخشه در آن داشتن که گذشت. روایات هم که این مقضایی رو برده البته استدلالات شیعه رو ذکر نکرده بودن یک نحوه استدلالی که بتونه با اهل سنت مقابله بکنه در عبارت ابن رو خوندی که خب انصافاً با قول خودش تغفصی کرده بود در استخصاری که ابن حضر انجام داده بود روایات ما یعنی شیعه و فتاهای علمان شیعه مطرح نبود و نیست اصولا اهلستانت چند جشن ازشان روشتن که ما اصولا به آراء شیعه به امامیه اعتران نمی کنم و نیستند. نیستن نه. اگر اجماع علمان شد مخالفت شیعه منظر به اجماع نیست اینه نمیشتن ازشان مال وحابی نیست ورزش از این کار وحابی هم. نه ورزش از و نشون میده که به هر حال اون چی که منصوب بوده در این جهنده امیر مامونی سرات الله علیه و علی که قبل صاحب باشه لاعقل به ایشون نرسیده و از مجموعه مثل من دیگه این روز کتابیشون نمیخونم چون طولانی شد این مقدار اون عمده روایاتش رو خوندی رو مناقشات خودی بیشانه که آن خواستم خودتون شما اون چی که الان از مجموعه عبارات ابن حرز ما درمیانیم و همچنین عبارات خود ما معلوم میشه که خود اهل سنت راجع به حکم ساحل از رسول الله چیزی نحل کردن که مثلا بکشن بزنن زندان بکنن چیزی نحل کردن اون چی که اهل سنت رسول الله نحل کردن راجع به است که در مدینه ایشون رو سهر میکن ادعا کردن شخص شخصی برام لبیده یا لبیده نا یا عرصم گاهی گفتن یهودی بوده گاهی گفتن یه منافق بوده قابل جمع جمعه هم هستم یهودی بود و ایشون رو کرد لیکن داره که پیغمبر به او کاری نداشتن جنبه ایجابی اصلا پیغمبر بیدن اگه مسلمان بود نه، فقط همین میگاه که اینا دلایل یکی هم راجع به گفتی شده زنهایی بودن از یهود که منشأ از و انشالله ساختات خلوعق بوده به اون هم پی کاری نداشتن نه که اصلا بر نفس اینه مجموعه نقل و سیر تاریخیش بگیریم تا ببینید چی شده یواشا شما به حسولم که اون چیزی که نه رخداد از ابوبکر هم در اینجا چیزی نه نشده در با از درباره مرتدین از ابوبکر نفس رو که سوزون دیگه از مرسلین رو به نام خدای اعلایی سپرد آوردش که می آسیش درست کرده از با سوزون بشه. و نه رو که اساس متعدد که ابوبکر در وقت خاصش رو به یک خاصی من نسوزون بوده. چون وقتی سوزون بحال کلافه بین صحابه که شما حق سوزوندن نداری. چوزو حدود الهی سوزوندن نیست این یعنی حدودی که در دنیا اجرا میشه لا از عز و بنام الا این عنوان معروفی رو مطرح کردن که کار او بغض درست نبوده که شخص ایران فجایع اخسندی رو با عنوان ارتداد سوزونده باشه البته در مسادر ما اساساً معتبر باشه بچه‌ها اون که ارزش هست روزی کسی که عمل استوریو شنیع کرده باشه داره که از سمیه رو فسمان برش من توضیح دادم در کتاب ابن هست من در کتاب خودم نیم خود موشیه ها ندید. میگه این شخصی که از تعمیر او رو در لباس سوزون نامش خجارایی اصلن بود خیلی عجیبه همون اسم میره که اوبلکه به عین در مرت خیلی عجیبه تو اجره به کار شد. و درست همون کاری که او وقت تشیما بود میگه یاله یادنی لم آه خجاره به نام، اینها آمدن در حالا اون از چی بوده چی شده کی این کارو کرده چرا به وامین نسبت دادن من واقعا بحثش الان نمیشم این همون اسم رو به وامین نسبت دادن دقیقاً من یه توضیحی سارهن عرض کردم متاسفانه دوی از کارهایی رو که مال اولی یا دومی بوده اینها آمدن عین همون هم به وامین نسبت دادن دو جا مشکل داره من جا یک جا بعضی چیزهای خوب بوده مولعمیون اینا براشون در اولی و دومی حساب دادن. ارف کردم بعد از نامه‌هایی که علی در باب غذاوت نوشتن، اینو گذاشتن به دومی حساب دادن و کتاب قارا که در اوائل قرن سوم نوشته شده، در, در اونجا نقل میکنه که این کار رو اول معاویه کرد، تفسیر میکنه. نامه‌ای که از علی معاویه نوشت گفت در علم بعد وصولش این بد در نشام کرد اول حسن چی نامه اینهش بعد رو به مردم میگه که این که نامه که این نام مال ابو بکر شده مال حسن نمونده این عبا مال ابو بکر بود توسط محمد بن اب بکر او رسول علیه السلام. علاوه بر اینکه از همون زمان ها این طرفه گسترش شروع شد خوبی ها رو به بر نسبت دادن این طرفه گسترش شروع شد اون کارایی که اونا محل اشغال بوده و سرگذاد رو چی ایجاد شده بود اونها هم باعث این و دعمی رو به اون دادن به یه قسمت مهمه در این تاریخی که با ما برمسوشه به شیعه چون بعد از این احکام تو فقه شیعه هم آمده منعکس شده منحی صلاحی اشعر خوب اینها بررسی بشه اصافا کار درست و حسابی حالا به هر حال من این مقدار این شاره سر در این جام نمونایی برد تا این روشن پس اون دیگه که الان به قول ابن حل با سند صحیحی داره است که ابن عمر کرده. توجیهشم گفتی یک سال قبل از موتش به دثره نوشته دو تا که مربوطه به دردشکی‌هاست ایرانی‌های مجوس به اصطلاح یکی بین که اینا در وقت غذا خودن زنگ زنگ میکنن دعاهای خواست خودش رو میخونن نخونن یکی ش که اگر یهودی مثلا خواهرشو گرفته به واسه مجوسی گرفته یا برادرشو گرفته جدا بکنه این بحث ازدواج با خواهر یا مادر در آین زردوشی دیدین خود زردوشی ها منکر همه چیزی نبوده این حالا شاید بعد زردوشی منحرف در یه وقت تاریخ ولی به طور طبیعی زردوشی ها که ما هم چیز نداریم هزواج با خواهر و محارم ما نداریم بله گفته شده به از پادشاهان برای این که به قول خودشون داره به قول انگلیسی خون آبی هستن خونشون با مردم دیگه نیست، اینا هم مثلا به اینکه برای اینکه این به از خدا دودمان پادشاهی جای دیگ دختر خودشه گرفته مثلا و الا به طور طبیعی در خط دینی نیست از این ماجرا کیه که خیلی شتابی نفتی بزرگدارا فیلم جوام میگه اینا دختر خودشه که سر در خانواده خودشه خود میگن والله سر سنت این معاصر هم در تاریخ اونی که در تاریخ هست میگن روی جلد پادشاهان محدود اینکه نه اینکه همشون این کارو میکردن در هر حال این دوتا مطلب که راجع به مجیزه راجع به ایرانی ها هست حالا این مطلب سوم هم که هرچی ساهر هست بکشین احتمال داره شاید مثلا درش کسان از اجم مثلا ایرانی ها ساهر مثلا احتمال دو دوتا شمال ایرانی هست اون سوامش که ساهره نمیدیم مال ماله کی بوده نمیشته سه نفر زن ساهره رو این سرباری این الحويه ایشنه حاصل است اسلام علی که به ما و ابن حزم میگه که این روایث سند صحیح است صحیح تقریبا میشه انسان اطمینان پیدا بکنه که اصل از زمان دومی شروع شده کوش کوش الی که راجع به صاحر هست و باز درضای متعدد حفصه میذانی وروس کرده کشته میذارم پسر نبی عمر دوست علی دست من بود و ی خوندیم دیگه عباراتش خوندی به ذهن میاد شاید برید نباشه حالا دقیقا موضوع اون صاحر چی بوده کسی بوده که شغلش این بوده کسی بوده که موجب به افتتان مردم بوده یا فقط سهر انجام میدازه به هر حال این آدم با شواهد که نگاه میکنه خود عمر و این عمری ها در این قتل صاحر ازشون زیاد نرم شده یه مطلب یه هر سالباتی چون وقت ما هم مساعد نیست در خود توراد اون قسمت هایی که احکام داره آن هم مراجعه کنم خوبه این بحث بحث خوبیه استخراج بکنم لطیفه خیلی جاها احکام شدیدی داره قبل زیاد داره نستاد به خوده خیلی توراد خیلی که الان من تو هم این وقت فکر دارم جدا بکنم چون خدا مراجعه کرده نرگر از کسی نیست و معروفه که عمر از اول ورودش به مدینه با یهودی ها آشنا بود این خوشونت در زیادی عمر از این خوشونت ها چه ای زیاده مثلا یکی زیاده رو رو کنم مثلا فقال عمر دعنی افتول روی رو خیلی راحت از اولش کشتن و چمچیز زدن و احتمال دادن ادهه که این تأثیر اون احکام تندی بوده انصافا احکام تندی در سرات هست انصافش هم ایتون. تأثیر اون همشینی که اینها هایشون با اون یهودی ها داشتند اون احکام تون که تونتون تون مثلا سر ببرند و دست ببرن و پا ببرند مال او باشه به هر حال از آیش نقل شده که نکش، و خود سنی ها میگیر کن حتی از سنی که دارشون میخواد تحیید سنت و عمر رو کنن میگن شاید این کنیز عایشه حاصل سعه نکرده، پیچیه خانمی رییخ اون صحر، خانم سر کرده، مثلا که قول عایشه بی نهی تو از قسمان هم نه شد که نمیکاشد. یعنی این مجموعه رو که اون در مجموعه میبینی، مجموعه این طوره که اون شدن از عمر و نسل و طیب و قارون هر چند چند نفر خوندیم بیه، و از عایشه نه که این کار نکرده، و اینکه اون زنی که تصریح کرده نخواستم بخشنم نخواستم بمیدی تصریح <تصفيق> کردی چونگه تصریح جرم شده و از عثمان هم نه شده که حتی به دختر قمر اعتراض کرد که چونچار این صحابه کشید؟ این دو نفر از صحابه و نظام ابن هرز اموده تکیه شو همین جهته یعنی راهی که ابن هرز میره و این که کشتندوست نیست نگه درست عمر بخصوط بکشین اما خب در مقابل و هفتن بخصوط عمر مؤمنین و که در مقابل عثمان داریم که بخار رفتونی دو خلقهای و آلشم داریم که این هم مؤمنینه این دوتا قائل و قرص نبودن این ظاهر قصه در صحنه خلافت به قسمه که ابن هرز هم کرده از اون ور خب میدونید که به طور متعارب فقه کوفه و فقه علیه ابن میدونن اصطلاح خودشون شون اول عبدالله مسعود در کوفه بود و بعدم امیر رو مومین سه سال در کوفتشی داشتن بزرگان فقه کوفه و حتی اون تابعین و بعدم تابع و تابعین و حتی مثل ابو حنک و دیگران هست اصطلاحا میگه این نوع فقه علیه ابن طالب بود یه قصه این شده زمان ورید ابن عقبه که دیویزان این کردیم ابن میگم فیلم امام علی هم وردان از راست این دسته شده به دلاله سعدوس عمره و اونی که جندوغو این ببین ساحل رو با شمشیر میزنه می‌کشه ولی ابن ابده نماینده عثمان بود یعنی از طرف قسمان در کوفه به عنوان والی چقدر لاواری و شرافت داشت این در براش درроде ولی فاسا بود اینجا کن فاسا منو نبره من خب شخص معلومه هایی هر بردی داره که جاشنیزید رو صحبت کردن ولی این قصه رو به عثمان می نویسه که کم این صاحب رو کشه عثمان مخالف بود این رو از هرزید یه قصه ضعیفه اما و هر حال در تاریخ نه شده ببینید من بخواب بگم ربط از اون دنیای خلافت رو حالا امر و مومنین با قول خودشون و خلقهای راشدی. ما یک جوری و درچه تیدیم به کوفه که محل شیعه بوده فرخ شیعه در کوفه بوده این قصه جند برنکر و عقلی یمنی که اون صاحب رو با شمشیر میکشه این میره به مدینه یعنی ولید ابن احوه نام مثل مدینه به اثمان که این این کرده عثمان مخالف بوده که تو حق کشتر نداشتید نباید صاحب رو میکشیم وقت نرم کنن علی ابن عزیزان رو از این دفاع کرده رفت قصه باید تشریع منوشون رفت قصه با کشیری شدنش دنیای ما دنیای شیری اگر دستی جندون کعب راست باشه از سرم اینشون که میدوره نکه ابنه هز دور. بگونید من اینو توضیح دادم وضع کوهه وضع خاصیه انصافاً خیلی شنافت حدیث سریعا ترین سریع در کوفه مشکل حالا من لحاظ تاریخش سیم مثلا اصلا سنیا میگن از کوف معدن رو کس کوفه معدن کوفه رو کس اضافه شنافتش خیلی مشکله برای ماها هم الان آن با اون دقت و ذرافتی که میشه شناختش خیلی سخته مثلا یه حدیثیست که سر صحیح هم داره فتوه به کباده از ما شد مشهور هم فتوه دادن این زنی بود سراقه شرابه شرابه در سنن سراقه سراقه چند روز شده از همدان بوده ظاهرا شوهرم داشته و نساجله هنرزش هسه این روزه پنج شانه شلاق و, و جنون رجم میکنن سنساری. خب ایده از صحابه و غیر صحابه دلیلشون در نیست این چون, چون, چون و شلاق در کتاب است رجم در سنت. یا محسن یا محسن نیست محسن نباشه جلده محسن هم باشه رشنه شما چرا جمع کردین بین این دوتا خیلی به بین صحابه ما هم داریم سرزایی هم داره که از رفهم جلدت تا کتاب الله و وجه هم تا سنت رسول الله خب یه حدیث صحیح داریم حدیثم صحیحه یونوس نعم میکنه از برد از حاب نبی عبدالله اسمشم دارم بردار من من تو زنم امام صادق همین اصلا یه بسه دروح هست چیزی نبوده چیزی که از فرمی دیگنفری رو دو تا حد جایی کردن نبوده از این که در در ارمان مقدار متهم بوده بر همین چون یونست گفتی این کار به قوالده یا کتاب یاد سوم نسی میگه تنها کسی از امام ساده نبوده اصلا یه بسه دروح هست هم شبار انجام نداشت بوده این روایت رو هم مرهوم شیخ توسی ورده دیگران ن نه کافی اومده نه تغیر رده شیخ توسی ناراحت شده فته غلط یونس چرا یونسمطلب ورده بخ لمیکن ذالکه فته یعني روایت خیلي سریح نیس یونس فته مراد امام صادق نه که این قصه دروغ ص ک ا س چه کار انجام ندار دقت میکني یونس شیخ به یونس حمله که شما بیخود نجو ما در روایات داریم کتاب احسانت هم هستند کتاب احسانت هستند اسم این خانه همین شراحه شراحه دیدن. شراحه تو میدونم چی؟ من خدا من میشه که همچه اسمی اما میشه از قصه روغ اساس نداشته مثل همین قصه خجایی اصلای در لغات خب تو روایت ما داریم از که از احکام حد درواز سزوندن به همین از من در که من در کتابهایی که من یاد داشتم که استثنا نکنه فقط در ابن حزم میاد ایشون که اینجا 10 تا 13 سال درو ایشون یه شخص بود نه کجای که می علی ابن نبی ایشون رو احرقو به نار به همان لباس خب وقتی من نگاه میکنه این کجای اثری ترسته و بعد سوخته شده در اقتدار و بعدم خود همون وقت ناراحت بوده در لحظه مرگش دیالکیلا موهر خیلی عجیبه این شومعه برای ما پیدا شده که بعضی از این احادیث رو با دو مرتبه یک بازنگری کلی بشه که نکنه خدای نکرده حالا خود شیعه ها نداشتن نقل کردن نقل صحیح نبود جابجا شده به هر حال دقت بکنید این دعوایی که در مدینه بود تا اینجایی که ما الان روشیم ما بخوام چه یه ندیش بکنیم این که در مدینه بود معلوم میشد که به رسول الله نسبت ندادن نه آیشی به رسول الله نسبت داده نه حفصه نسبت داده نه فارسی عثمان نسبت داده نه عمر نسبت داده خیلی عجیبه هیچ کدومشون به رسول الله نسبت ندادن معلوم میشه پتاوای خودشون بوده حالا چی ف... فکر کردیم بحث دیگه ده. نه اعتراضه خوارجی این دسته بعد از مکه منتقل شد به کوفه. حالا مرکز تشیع و این قصه که شناسه به کوفه متاسفانه به صورتی درگذشت که منشأ دعوای فرقه ای بود. یعنی از عثمان در کوفه نقل کردند که این کشتن باطل بود. از علی معرت سالا نقل کردند که این کشتن درست بود. و شاید در از وی میگن اون صاحب رو کشت به عثمان هستید یعنی قصه به ما افتاد رو خط و جناحبازی سیاسی از اون حدن خارج شد افتاد رو جناح سیاسی که این چه کارش بکنیم از اسمان نرسو شما حق نداریدیم بکش این صاحب حدش قرد نیست از علی ابن عبیسالی نرسوی که نه درسته حد حق صاحب قرده یعنی این کار زمان عثمان قبل از اینکه امیر مومی به کموتا چیز بیاره؟ پس این در حقیقا از اینجا ارتباط به شیعه پیدا کرد. مکن ارتباطش من همیشه عرض کردم به از مسائل شاعده کلامی داره نفقی. چون بحث خلافت مدرح بود و کارهای عثمان مدرح چون بیدین عثمان خب هم به علاوه سن و سال از علی بن نوریطول خیلی بزرگتر بود. خب خودش هم خیلی به امر اعیان میدونسته. و که داماد رسول الله میدونسته. مخصوصا خب به قول انوری ما باجناحا رو ما میموت حاضر نبود که برای باجناحا هاشم تکلیف میشه به استفاده متوارز علم و در کتاب ابن عبی شیبه بن دیدم به نظر ابن عبی شیبه مؤدرزان مصنف ابن عبی شیبه هستند الله. که وقت عثمان در محاصره بود. و این که جانش در خطر بود دیگه خب و از اون خوب به خاطر اون مهاجره کوشش عثمان هر تأمینی ورقه ای برای شاید شاید این ورقه مثلا چی بوده از رسول الله بود اینا رو به عثمان گفتن که این کتاب رو به این مردم نشون بده که خانه مهاجره کردن این کتاب مال رسول بود مثلا بگم ببینم چهجوری این عمل بکن یا مصنف عبدالرزاق یا مصنف دیدم در کتاب احسانت من در کتاب خودم هم و اینو نشون بده مثلا جمعیت مفرده شد اصلا قبول نکه زیر لا حاضر من کتاب دردن من, من اینو نمیخوام. یعنی حاضر نبود به اصلاح و در این دل لحظات حساس که بلید به مرگشون دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه این هست. یه مسئله احرام قبل از ما توضیح مفصل دادیم اونجا متاسفانه همین شبه سیاسی مطرح بود چون خب خراسان دور بود آمره نه پسرشه یا آمره پسرشه این ها پسرخاله های عثمان هست های عثمان هم. این نزر کرده بود که اگر نیشار بولا خراسان رو گرفت از اونجا بیاد پیاده تا مکه حالا یا عمره بود یا بود و گرفت خراسان رو گرفت به نزد خودش وقا کرد. این که پیاده آمد این مشاقه سرسره شد توی مدینه عثمان سنه میگفت تو بی خود آمدی چرا این همه را پیاده آمدی؟ از خراسان مثلا چهار ماه شیش ماه خورا بزنم پنش از خراسان چرا پیاده آمدی؟ سنت رسول الله چرا احرام بستی از اونجا؟ احرام باید از مواقیت باشید تو چرا قبل از میقاد احرام بستید؟ این تره دعوای میقاد احرام قبل از میقاد این از زمان عثمان شروع شد. عثمان هرچی بود که این احرام درست نیست احرام مثل باید از میقات باشه. درک کردیم چی شد؟ این امام گفت نه خب از ما نیا رو شیشو مثلا جواب بود نمیاد واسه چیزی احرام کردیم با نبودیم نپودید که بودیم بودید حالت خوبیه. این دعوا از اونجا شروع شد. ائزه از सहाبه گفتن حق با عثمان حق نداشتیم. الان می‌بینی ما روایتی که داریم امرک ان و انسیحه للله علیه شکرا. اینا هر انگار اینه من خراسان این همون قصه دعوای زمان عثمان که رو همون قصه دعوای زمان عثمان به اینه سو روایت ما وارد شده حالا من نمونه های دیگه هم هست جدید جلی فقط میخاصم برای توضیح تخص بنابراین معلوم شد که این قصه توسط یعنی در زمان عثمان نقل شده که به کوفه منتقل شد و منشعه این شد که عثمان میگفت قتلش جایز نیست لیکن علیه در بیتاله فرمان قتلش جایزه ولی که واجبه یکتر و صاحب پس نحوه ورود به هم ظاهرن به دنیایشی شیعه از اونجا ظاهرن و اما در دنیا کتابت و آسا صادقا اشاره کردیم برنامه ان باز اشاره کنه تا اینجا میخوایم این قصه رو بررسی بکنیم برای وصولش به دایره به اصطلاح فقه ما در دایره فقه ما هم اجمالا از این کتابی که به نام قضایا و احکام بوده توش داره و به عنوان کفر ساهر کافر و کذال در کتاب جعفریات که احتمالاً کتاب به اصطلاح سکونی باشه اونجا هم داره اونم هم اله علیه از آرسان هم علیه اونجا هم داره و در کتاب خود سکونی هم داره اونم اله علیه اونبسه موتون کم و زیاد دارن و در کتاب مستند ذل که از که شده اولین کتاب بوده که نبه های صحابه به جدشون نصفت دادن زیر ابن علی داده به پدرشون حضرت سجاد به امام حسین انعریه قال حد و صاحر اونجا هم داره یعنی این مجموعه احکامی که ما روایات ما داریم که نسبت داده برد روشن شد مجموعه نصفت ها اول قضای و صنوال احکام هست جهتری هست کتاب سکونی هست و کتاب به حساب مستند همه اینها آن علیه. البته خود زیدیها ها معروض میست حتبای این باشه ولی کتاب علا احکام که مال یحیدن حسین که پیش زیدیه به الامام حادی معروضه که زیدیه های یمن الان حادوی هم حتبای میشن این, این اولین کسی است که نشد دعوت زیدیه رو در یمن کرد خیلی هم شجاع بود انصافا موانده ملا یمن که میتاب علا احکامش ان جواب در این مسئله واقعا خیلی تند خیلی رذیشی عزیزم خیلی زده امامیه سحر میکنه خیلی اهانت امامی به امامیه میکنه به علی معصوم خیلی عجیل در دوران بلد سهراب بوده یعنی 1885 بعد فاطشیا شیخ یا در این علی که به ما ایشون میگه نه توبه بدین فاسق اینو نمیکنه مال مستند زیدو فصبر اگه چیز نشه اون وقت بله به نظرم بله. بله. نمیگه یهو بست مثلا چیزی این چیزی من تو همین پیروز نمکن بود خواب بزن فراموش شد الان که به ماکان و نقل نمی کنه علیه نقل نمی کنه در این کتاب با اینکه زیدیست و باز باطن به همون آثار خودشون برگردن نقل نمی کنه از مصدد پس ما مجموعه روایاتی داریم که تمام اینها برمی گرده به علیه در بیتاله هم و در تمام اینها بیشه این روایت داره که حضرت در میان مسادر آمه هم هست نسبت وردیه نرویت و از این مسادری که من گفتم در میان مسادر آمه هست تا اینجا معلوم شد که انصافت اگر شبهی بوده فکر میکنم اینشالله واضح شده باشه این شبه از اواخر عواصد قرن اول بوده حالا یه قصه جلو برنکه بوده یا قصه دیگری بوده این منشأ نسبت به اصطلاح به امیر المومنی الله سلام علیه و, و, و نسبت به گروه به فقه هشیه. برای نتیجه نهایی باید صورت دیگه بخشیه فقط من یک، به اصطلاح یک طرح اجمالی دادم. در این بحثی که ما الان می کنیم طرح تره لحظه ها این به اصطلاح واقعگرایی فعلا دنبال و حجت نیستیم. به ذهن خود اون مجموعه شواهدی که بتونه واقع رو تصفیم بکنه چون اگه ما بفوانیم به واقع برستیم دیگه نوبت به حجیت نمیرسه حجیت در فرز عدم وصول ما به واقعه برای توضیح بیشتر چون مصدی که خوندیم بیشتر سر روایات بود کتابیست به نام المغنی مال همین این ابن عبادامه معروف در نموه همون بنزم یه هشتون به نام مارون یه باید هم انصافه در این کتاب خوبیه این المحبی به اصطلاح بله مزاقه های 600 سیغن هفتون بله و المحبی انصافه به ذهن من میاد شد در کتاب های همبلی ها خوبی چند داشته باشیم اینشون همبلیه بایین که همبلی ها خیلی به فقر نیستن به حدیث بیشن معروفن خیلی کتاب خوبی المحبی انصافه کتاب جمع جو خوبیه در این جلد ده در بقیه ابواب حدود نه بعد از حد ها از صفحه 113 به این چاپ چا. صفحه دیگه داره 4 زیاد داره 4 غیر نداره بده ایشون متعرض بحث سحر شده و واقعاً و لا و سلامو نمی تکلم نه تعابیر که ایشون داره بعد ها علامه داره منشأ ورود خیلی از کلمات عهد سنت و مبانی شد در شیعه؟ یا توسط شیخ در خلافه یا ترسط در علامه در تسکل و این نشون میده که خیلی سریع بوده انتقال علم انسان الان مشهور اینه که مرحوم علامه از مغنی گرسه اسمانی بلیتان مغنی من ارز کردم به نحوه دقیق از مغنی نگرسه خود صاحب مغنی که ابن قدانه کبیره یک کتابی داره به نام بله. به نام مغنه مغنه این مغنه رو که سربرادر این قدامه دارش این قدامه است و سربرادرش متعبای شخصد و هشتاد و علامه هفتاد و بیست و شیشه بعد میشه انتقاله ایم که این سرگی بوده این کتاب در اختیار علامه بوده علامه شرح کبیره اسم کتاب شرح کبیره این نصفهی که من دارم شرح کبیر در حاشیه چاپ شده بالا مغنیه پایین شرح کبیر شرح کبیر خیلی از عموش گرفته اون دقیق میکنه که ها به تصکره علامه با شرح کبیر بیشتر انتباه داره که مغنی واضحه از مغنی هست اما مستقیم از مغنی نیست علامه عباراتش با شرح کبیر بخوره شرح است، و او از انوش زیاد گرفته لیکن علامه کتاب شهر کبیر دیشه شده و اگر در این شهر ها و آرائی اشتباه نستدازی شده این منشه انتقال به فقه شده یعنی ما الان دو تا مستر اساسی ما در انتقال اقوال احساس عرب ما این دو کتابه یکی خلاف شهر توصی که خوندیم مخصوصا یکی هم شهر کبیر ابن قدامه سربادر قدامه معروف که این توسط علامه رسیده ببین اقدون و رقا و کلامون یتکلم به یکتوبه او یعمرشه انو اصل و پیبادن مسئول خبی به بارتو در کلمات علامه و شید اول اون اصل اون عبارت از اینجاست رحمته به کتاب علامه از کتاب علامه در اقدام بعد از علامه پیبادن مسئول و قلبی و عقلی تقدر فهم نیست چونها به عرض بکنم؟ و خوبه این صاحبا هم موقعی هم شرکه کتاب خوبیه اما خب یک مشکلی اهل سنت دارن که خیلی مشکل بزرگی من واقعا هم حلشون به قابل هم نباشه در نقل از علماشون زیاد دارن تو اصول که معرکه از دیگه تو فقه همیتون گایی مثلا از هموهنفه 23-34 تا قول نرم میشه انصافش علمای شیعه ما الان مقتنع در این هستند یا از خلاف نعم میکنن علمای که یکی بودن بوده خب حالا تو میشه در استفاده خود ها حاوی گزار ما متواطئه بشن در از یکی از راه هایی که ما الان باید یه مقدار دست از اون متعارفه حوزه خودمون بردی همینه چون کتاب ها اینا زیاد چاپ شده مبانی اینها کاملا نوشته شده بهتره بارش مراجعه مستقیم خودونه نه بباس. بعد بعد از این که یک تحریفی از تحرمی کنه و بعد از بعد اصحاب شافیه لا نهولا حمیقت بلن همین بحث این که حرفت داری ما بازی یک تحریف برد بعد نمیشته که از ها عبی هنیفه گفتن که امکان شیعن یعنی هسته لا بدن مذخور اگر برسته مثلا دود بکنه که دود به طرف برسته که دخانه منحویه جازه یعنی هسته به منحو و اما انیحس و المرگ و المصم قیل انیحس و غدنیش اون فرای ازالی لهم نهول و جال زرافت معجزات فرای دیگه من نگو کنم از عبارات تمام عباراتی ایشون بود بعد ایشون میگه همین از که حقیقت داره آیه مبارکه رو میاره فرای عوضو برای برخلق و امین شهر و حاصل این لحسن و امین شهر که این فرای آقل منظرم که این سه این هم یه داره بعد از این قصه عایشه نه می‌تونن النبی چهره که اکثر این واقعه قصه عایشه نه علی رو داره که یکی از مشکلات همین بود که مثلا یا عایشه تعریف ما دروغ گفته یا این که این قصه خب یه جوری نمیشه قبول بشه مثلا پیغمبر نه شب رو دست اثر شدن باشه اگه اینطوری باشه که شیش ماه پیغمبر مثلا نزدیک نمی‌کنه سیاض نمی‌کنه خب زرهدیان نار نمی کردن. تا یک واشکنم ای بود این منشأ شبهه این بوده که اصلا مطلب یا دروه یا پیداور مثلا نسبو اون یک حالتی داشتن خیال هست. من می محمدش میکنم. ایشون که خیلی متاسه این میشد. بله. علاوه بر من نگا می محمدی شنون. بعضی شو میگن که امر زیاده بین مردان شواله سفر خیلی زیاده. ما در بحث چه شو گفتیم؟ واس بعد حالا نحویی انتقال به فتحابای خودمون رو میخوام بگم به فتحابای ما، کتب ما، روایات ما ببینید اشون میگه اداد سبب فتحابا فعن تعلم از سر و تعلیم از حرامه. خیلی عزیب حرز کردم این کلمه تعلمی که اصل قرآنه داره که یه تعلمون من همه یه اصل روایی داره من تعلم باب من از و ادعا شده که همین تلقیه و قبول شده ببینید در این کتاب موقعین لا نعلم و فیهه خلافاً به این اهل این ادعای اجماع هم حالا این سؤال در رحصه آینده خواهیم گفت همین عبارت رو هم مرحومه محقوق حیلی عورده و تعلم و و بعد می کنیم که صاحب جوانی یه انصافاً تعلم دلیل و هرمتش نمیدون یاد بگیره عمل نکنه چی چ ظاهر عباردشون که نفس تعلوم حرامه، بلکه در اینجا تعلوم و و تعلیم هم بود نه فقط لا نعلم و فیه خلافاً بین اهل العلم درکن؟ بلکه بالاتر بالاتر خواب اونا احمد نهن بلی هم بلی ها و یکت پرو صاحب تعلومی یک فر صاحب به تعلمی و فعلی سوا اون اعتقده تحریمه و اباحته بود و روی ان احمد ماید اللعنه هم لاکه کفر تکدیر نمیشه دو ساله باید به قول خودش و ایشون بعد حالا نمه هم بخوند یه خود تعال نگاه بکنن بله و قال اصحاب عبدالحنیفه این اعتقده انه شیاطی تفنده هم مایش ها کفر و این اعتقده انه هم تخییدون و غارش شافی یعنی اعتقد ماییو جبور کف مثل تقراب در تواکب سبعه خوندیم اقوات فخرازیه فخرازیه خود دوچه از شوافهه و انها تطعا ما یلتمس او اعتقد هلسته لأن القرآن نتقه به تحریمه این نحوه تناسه که ولکه مشیاطیم کفرو میگه ان القرآن نتقه به تحریم است خب اگه این نتقه به تحرینه میگوی که اما اختلاف و ثبت به نقل متواتر و اجماع علیه میگویم اجماعش اجماع ندارد. فایده خودش. و ایلا فسر و نمیتوان. لعنت آیشه باعث مدبیردن لها سهرت ها به محض من صحابه، ولو کفرت، لسارت مسددن یک جفت لحام. ولن یک جفت استرقب ها. و لعنت هوشی اونی از رو به ناز یا یوزر به ناز. فلن یا به مجردی مثل عذیت مردم به مجرد سه تکفیر چون محلب این قدامه لطایرشو پراغان داره فردو بحیشو میپنه ربطی دیگر یه باشه باش و جمع بکنی تاریخ این مسئله با رو باره هایات ما و نتیجه